I am enamored. I avoid In the name of <laughs> the کتاب مبین هده و بشران به نام الله که بخشایانده و با رحمت است تاسین اینها آیات قرآن و کتاب بیان کننده حقایق است و برای اهل ایمان سراسر هدایت و بشارت است همان کسانی که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت نماگند و به وجود آخرت یقین دارند کسانی که آخرت را باور ندارند اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوگر میکنیم کنیم به طوری که همواره در زندگی حیران و سرگردان بمانند آنها کسانی هستند که عذاب سختی برای آنها و در آخرت نیز، زیان کارترین مردم خواهند. به راستی، قرآن از جانب خدای حکیم و دانا به تو القا شد. یادار، هنگامی که موسی به خانواده خود گفت، من آتشی را از دور می بینم. شما بمانید تا خبری از آن برایتان بیاورم، و یا شعله آتشی از آن را برای گرم شدن تان حاضر نماید. هنگامی که موسی به آتش رسید ندای شنید که گفت با برکت است آن درون آتش است و آن در کنار آن است منزه است خدایی که پروردگار جهانیان است ی موسی ان انا الله العزیز الحکیم ای موسی منم خدایی که قدرت من و حکیم است اصایت را بی انداز چون این کار را کرد دید عصایش چون ماری به سرعت می موسی و عقب بازگشت و از ترس حتی پشت سرش را نگاه نکرد ای موسا نترس پیامبران هنگامی که نزد من هستند نمی ترسند. مگر کسی که ظلم کرده باشد اما چون بدی را به نیکی تبدیل کند خواهد فهمید که من آمرزنده با باگذشتم دستت را در گریبانت داخل کن تا بی هیچ عیبی سفید و درخشنده خارج گردد این یکی دیگر از معجزات نهگانه است که با آنها به سوی فرعون و قومش می روی. آنها قومی زشت کردار و بقصیرت هنگامی که معجزات روشنگر ما به آنها رسید گفتند این یک جادوی واقعی است با آنکه در دل به حقانیت آیات و معجزات یقین داشتند از روی ظلم و برتری جویی انگارشان کردند پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود ما به داوود و سلیمان دانش عطا کردیم و هر دو گفتند سپاس خدای را که ما را بر بسیاری از بنده های مؤمنش برتری داده است سلیمان وارث داوود شد و رو به مردم کرد و گفت ای مردم، طرز سخنگفتن پرندگان را به ما آمودند و از هر چیزی به ما عطا شده است و این یک فضیلت آشکار است و همه لشکریان سلیمان از جن و انس گرفته تا پرندگان گرد آمدند در حالی که به صفوفی به نظم بودن تا اینکه به وادی مورچگان رسیدن. مورچه مورچهای گفت ای مورچگان به خانه هایتان بروید مبادا سلیمان و لشکریانش در بیخبری شما را زیر پاله کنند قولها و رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالح ترضا و برحمتك في عبادك الصالحين سلیمان از لحن مورچه لبخندی زد و گفت پروردگارا به من توفیق ده تا نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای شاکر باشم و عمل کرد نیک و شاگسته ای داشته باشم که تو را خشنود کند و مرا به برکت رحمت خود در زمره بندگان صالحت قرار ده آنگاه میان پرندگان گشت و گفت چرا خود را نمی بینم؟ شاید او غایب است به خاطر لیبتش او را مجازات سختی خواهد کرد و یازبهش کنم مگر آنکه دلیل روشنی داشته باشد چندی نگذشت که هدهد آمد و گفت به چیزی آگاهی یافتم که تو از آن خبر نداری از سرزمین سبا برایت یک خبر مبسق آوردن من زنی را یافتم که بر اهل آنجا فرمان روایی می کند. و از هر نعمتی برخوردار است و یک تخت سلطنتی بزرگ دارد دیدم که او و مردمش به جای خدا خورشید را سجده می کند. شیطان نیز اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه می میکند و از این طریق راه نجات بخش الهی را بر آنها میبندد و نمیگذارد آنها هدایت یابند چرا الله را سجده نمی کند؟ همان خدایی که نان ها و زمین را آشکار می‌کند و از آنچه پنهان می‌کنید و یا عیان می‌سازید آگاه هست این الله است که هیچ معبودی جزو نیست هم او که پروردگار عرش بزرگ است سلیمان گفت با دقت بررسی می‌کنیم تا ببینیم راست گفتی یا از جماعت دروغ یانی این نامه مرا بگیر و ببر و به سوی آنها بینداست آنگاه از آنها روی برگردان و منتظر بمان ببین چه جوابی میدهند زن گفت ای بزرگان نامه مهمی به سوی من ارسال شده است اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم الا نامه از سلیمان است با نام خداوند رحمان و رحیم آغاز شده است بر من برتری نجویید و در حالی که سراپا تسلیم حق استید به نزد من آیید زن گفت ای بزرگان نظرتان را در مورد امری که برایم پیش آمده بگویید میدانید که هیچگاه بدون حضور شما مهم مهمی را خودسرانه انجام ندادند گفتند ما قدرتمند و جنگاورانی بزرگ هستیم اما فرمان به دست توست پس دقت کن که چه دستور میدهی. زن گفت پادشاهان هرگاه وارد شهری شوند آن را به فساد و تباهی می‌کشند و بزرگان آنجا را خار و ذلیل می‌کنند همواره عملکردشان این گونه است من حدیه گرانبه هایی نزده آنها میفرستم و منتظر میمانم تا ببینم پیک ها چه جوابی میآورند. آورند. هنگامی که پیک نزد سلیمان رسید سلیمان گفت آیا میخواهید مرا با مال دنیا یاری کنی؟ بدانید آنچه چه خداوند به من عطا کرده از آنچه به شما عطا کرده بهتر و بیشتر است و این شمایید که به هدایایتان دلخوش می شدید. اکنون به سوی آنها بازگرد و اعلام کن که ما با لشگریانی به سوی آنها خواهیم آمد که تاب مقابله با آن را نداشته باشد و بیشک آنها را از آن سرزمین خار و زلیل بیرون خواهیم کرد سلیمان گفت ای بزرگان کدام یک از شما میتواند قبل از آن که آنها تسلیم من شوند تخت سلطنت آن را برایم بیاورد افریتی از جنیان گفت من آن تخت را برایت می آورم قبل از آن که از جایت بلند شوی، زیرا من نسبت به این کار قدرتمند و قابل اعتمادم کسی که از کتاب الهی علم و بحری داشت گفت من آن را برایت می آورم پیش از آن که پلک بر هم زنی و هنگام اینکه سلیمان آن را نزد خود دید گفت این نمونه از فضل پروردگار من است تا مرا بدان بیازماید که آیا شکرگزار خواهم بود یا ناسپاس. هرکس کس شکرگزاری کند به نفع خود کرده است و هر کس هم ناسپاسی کند بداند که خداوند بی‌نیاز و کریم است سلیمان گفت کاری کنید که تخت سلطنت او ناشناخته شود آن را از صورت اولش خارج کنید تا ببینم آن زن تخت را باز خواهد شناخت یا از آن هاست که به حقیقت هدایت نمیشود. هنگامی که زن آمد به او گفته شد آیا این چنین است تخت سلطنت تو زن گفت گویا یا همان تخت است ما پیش از این از حقایق آگاه شده بودیم و تسلیم حق شده ایم بدین او را از پرستش هر آنچه به غیر از خدا می پرستید باز داشت زیرا آن زن از جماعت کافران بود به زن گفته شد به بارگاه قصر وارد شد هنگامی که وارد شد پنداشت که کف آن استخری از است دامنش را از ساقهایش بالا زد سلیمان گفت این آب نیست بلکه قصری از جنس بلور و صاف است زن گفت پروردگاه من به خود ستم کردم و اکنون همراه با سلیمان پا تسلیم خدایی می که پروردگار جهانیانه است ما به سوی قوم سمون برادرشان سالح را فرستادیم که خدا را بپرستیم اما آنها دو گروه شدند و به جدال با یک دیگر پرداختند سالح گفت ای قوم من چرا پیش از آن که به نیکی رویآورید به بدی کردن عجله میکنید؟ چرا از خداوند بزرگ آمرزش نمیخواهید تا رحمت او شامل حالتان شود گفتند ما تو و همراهان تو را چگون و بدیوم نمی دانیم گفت همه مقدراتتان به دست خداست این توجیه است که میکنید شما قومی فرید خوردید و در شهرشان نه گروهک بود که در آن سرزمین دست به فساد و تباهی می زدند و اهل اصلاح و خدمت نبودند گفتند همگی به خدا قسم خورید و هم پیمان شدیم که به او و اهلش شبیهون بزنیم. آنگاه به خونخواهانش بگوییم ما از این قتل آن خبر نداریم و از راستگویانیم. آنها نقشه فریب کارانه کشیدند. ما نیز چاری تدبیر کردیم در حالی که شعور درکش را نداشتند. بنگر که نتیجه نقششان چه شد؟ ما همگی آنها و قومشان را زیر و رو کردیم آن خانه های آنهاست که اکنون به خاطر ظلمی که کردن خالی و بی سکنه گشته است براستی در آن برای مردم دانا عبرتی است و کسانی که به حقایق ایمان آورده بودند و حرمت عوامر الهی را نگاه می همه را نجات دادیم و لوت را به یاد آورد آن هنگام که به قوم خود گفت چرا آگاهانه اعمال زشت مرتکب می شوید؟ چرا از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید؟ حقیقتا شما قوم نادانی هستید و جواب قوم لوت چیزی نبود جز آن که گفتند خانواده لوت را از شهرتان بیرون کنید زیرا آنها خواهان تهارت و پاکی هستند سرانجام لوت، و اهلش را نجات دادیم به جز همسرش که تقدیر کرده بودیم از بازماندگان در شهر باشد و بر آنها بارانی باریدیم و باران کسانی که قبلا به آنها هشدار داده شده بود چه باران بدی بود قول الحمد لله و سلام علی عبادی الذین الله اما بگو ستایش مخصوص خداوند است و سلام بر بندگان برگزیش آیا الله بهتر است یا آنچه شریک او میدانند شریکی که قلا بهتر است یا کسی که آسمان آب و زمین را خلق کرده و از آسمان برای شما آبی فرستاده تا به واسطه آن با زیبا و دیدنی برویانید شما را توانایی رویاندن درختی از آن نیست با این وجود آیا خدای دیگری با الله است؟ نه، آنها قومی منحرف هستند شریکی که قائلن بهتر است یا کسی که زمین را جایگاه با ساخته است؟ که در آن رود و خوهای مختلفی ایجاد کرده و میان آب دو دریا مانعی ای قرار داده تا آب با شیرین مخلوب نشود با این وجود آیا خدای دیگری با الله هست نه اکثرشان ناآگاه هست <تصفيق> <تصفيق> شریکی که قائلن بهتر است یا آن کسی که چون انسان گرفتاری او را بخواهد اجابتش می و بلا را از او دور میگرداند آنکه شما را جامشینان زمین قرار داده است با این وجود باز خدای دیگری با الله است چه اندک و كمرزش پند میگیرید شریکی که قائلن بهتر است یا کسی که در تاریکی های خشکی و دریا راهنماییتان میکند و پیش از نزول رحمتش بادها را به مژده میفرستد با وجود این آیا خدای دیگری با الله است بلند مرتبه است الله از هر شریکی که برایش قائل می شوند شریکی که قائلند بهتر است یا آن که آفرینش را آغاز کرده سپس همه را باز میگرداند همون که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد با وجود این آیا خدای دیگری با الله است بگو اگر راست میگویید دلائلتان را بیاورید بگو هیچ کس از نادیده و اسرار آسمان و زمین آگاه نیست مگر خداوند بزرگ آنها حتی نمیدانند چه زمانی دوباره زنده مبعوض خواهند شد. مگر درباره آخرت به آگاهی کامل رسیدند؟ نه، آنها در مورد آن در شک و تردیدند، بلکه نسبت به حقایق آن ناوینا هستند. آنان که به حقایق کافرند گفتند چگونه وقتی ما و پدران من تبدیل به مشتی خاک شدیم دوباره زنده از قبرها خارج می گردیم. از این بعدها قبلا هم به ما و پدران من داده بودند. این حرفها چیزی جز افثانه پیشینیان نیست. بگو در زمین سیر کنید و ببینید عاقبت مجرمان چگونه بوده است. از اندیشه و عمل آنها اندوهگین مباش و از نقشه هایی که می‌کشند خود را در تنگ نامبید. میگویند اگر راست میگویید این بعد عذاب چه زمان تحقق خواهد یا بگو شاید ای از آن عذابی که از جمله‌ام را طلب میکنید نزدیک شما باشد بدان که پروردگارت فضل و کرم خود را بر همه مردم می‌گستراند اما اکثرشان سپاس گذار نیستند راستی پروردگار تو آنچرا مردم در دل مخفی کرده هند و آنچرا آشکارا انجام می دهند می دانند هیچ نادیدهی در آسمان و زمین وجود ندارد مگر آنکه تقدیراتش در کتابی روشن نگاشته شده است. این قرآن بسیاری از مواردی را که بنی اسرائیل مورد اختلاف قرار داده بیان می کند قرآن برای اهل ایمان سراسر هدایت و رحمت است پروردگار تو میان آنها به حکم خیش قضاوت خواهد کرد زیرا او قدرتمند و آگاه است پس بر خداوند بزرگ توکل نما زیرا تو بر طریقه حقی روشن قرار داری بدان که تو نمی توانی مردگان را شنوا کنی همانطور که نمیتوانی صدایت را به گوش کرانی برسانی که از تو روی برگردانده و و توانی کسانی را که نسبت به حقایق کورند از گمراهیشان به راه هدایت برگردانی، فقط می توانی کسانی را نسبت به حقایق شنوا کنی که به آیات ما ایمان دارد و سراپا تسلیم خداوند بزرگند هنگامی که قیامت فرارستد جنبندهی را برای آنان از زمین خارج میکنیم تا با مردم سخن بگوید که این مردم به آیات ما یقین نمی‌آورند. روزی که از هر امتی گروهی که آیات ما را تکذیب کردند محشور کنیم در صفحایی مشخصند تا زمانی که به محشر برسند خدا گوید چرا نا آگاهانه و بدون آن که از حقایق آیات من با خبر باشید آن را تکذیب کردید این چه کاری بود که مرتقب شدید؟ به خاطر دستاورد ظلمالودی که داشتند مجازات الهی آنها واقع می شود در حالی که حرفی برای گفتن ندارد؟ آیا ندیدند که شب را برای آرامششان قرار دادیم و روز را روشنی بخشیدی؟ در همه اینها برای اهل ایمان است. روزی که در سور دمیده شود هر کس که در آسمان و زمین است وحشت زده می مگر آن که خدا بخواهد همشان با ذلت و خاری به سوی او روانند و ها را می‌بینی و میپنداری جامد و ثابتند حال که به سرعت ابر و باد در حرکتند آفرینش خدا این گونه است که همه چیز را متقن و حساب شده آفریده است بدانید که او از عمل کردتان آگاه است هر کس عمل کرد نیکی داشته باشد بهتر از آن را پاداش میگیرد و آنها در آن روز از هر ترس و وحشتی در امان و هر کس عمل کرد بدی داشته باشد با چهره واقعیش به آتش اپگنده می شود. مگر شما به غیر از دستاوردتان عذاب می بینید. من معمور شدم که پروردگار این شهر را عبادت نماید. شهری که حرمتش را واجب گردانیده است بدانید همه چیز از آن خداست و معمور شدم که از تسلیم شدگان باشم و قرآن را تلاوت کنم پس هر کس به راه خدا هدایت شد این هدایت به نفع اوست و هر کس گمراهی پیش کرد بگو من فقط یک دهنده بگو ستایش مخصوص خداست و به زودی آیاتش را به شما نشان خواهد داد تا آنها را بشناسید و بدان که پروردگارت از عمل کرده غافل نیست. وقل الحمد لله سيوريكم آياته فتعرفونها وما ربك عما تعمل صدق الله العلیل العظیم گفت خداوند بلند مرتبه و عزیم خاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه, و علیه و سلم.